پنجم وقتی ناخواسته به یک زندگی کاملا جدید رانده می شوی، یا بهتر است بگوییم به زور به زندگی فرد دیگری تحمیل می شوی، و تماشا چیه لحظات زندگیش می شوی کارت به جایی می کشد که با خودت فکر کنی واقعا چه کسی هستی؟ یا از نظر دیگران چه جور آدمی هستی؟ از نظر پدر و مادرم من توانسته بودم با گذشت چهار هفته تا حدودی جذب کارم شوم. اکنون در دنیایی کاملا متفاوت قرار گرفته بودم. به خصوص مادرم هر روز از من چیزهایی در مورد گرنتا هاوس و اوضاع داخلیش می پرسید. آن هم با حالتی که انگار داشت در مورد یک موجود عجیب و غریب و عادتهایش تحقیق میکرد. میپرسید خانم ترینر همیشه از دستمال پارچه ای استفاده میکنه یا؟ فکر میکنی اونا هر روز مثل ما جاروبرقی میکشند؟ یا از زمینی چه استفادهی میکنند؟ صبح با سفارشاتی مرا راهی کارم میکند. مثلا بفهمم فهمم که از چه مارکی برای دستمال توالت استفاده میکنند یا ملاف از مخلوط الیاف پنبه و نایلون هستند؟ وقتی در اغلب موارد میدیدی یادم نمیآید به شدت دلخور میشد. از وقتی در شش سالگی به مادرم گفتم که مادر یکی از بچه پولدار مدرسه نمیگذارد در اتاق نشیمن خانهشان بازی کنیم چون باعث می شود گرد و خاک بلند شود، مادرم در دل فکر میکرد که پولدارها در کسافت زندگی میکنند وقتی به خانه میآمدم و گزارش میدادم که بله سگ اجازه دارد در آشپزخانه غذا بخورد یا خانواده ترینر پله های ورودی را هر روز تمیز نمی کنند. کاری که مادرم انجام میداد لبهایش را به هم میفشرد و به پدرم نگاه می کرد. با رضایت خاطر سرتکان میداد. گویی با اخباری که هر روز می آوردم حد س او را در مورد روش زندگی پولدارها به یقین تبدیل میکردم. چشم امیدی که به درآمد من داشتند یا شاید این واقعیت که میدانستند من واقعا شغلم را دوست ندارم باعث شده بود کمی بیشتر مورد احترام خانواده قرار بگیرم. البته نه خیلی. مثلا پدرم دیگر پرخور صدایم نمی‌کرد از طرف مادرم هم فقط در این حد بود که معمولا وقتی به خانه برمیگشتم می‌دیدم لیوان چای منتظرم است برای پاتریک و خواهرم فرقی نکرده بودم هنوز وسیله خنده و شوخی بودم بوس و آغوش دریافت می‌کردم یا مورد بدخلقی واقع می‌شدم در خودم تغییری نمی‌دیدم ظاهرم فرقی نکرده بود و هنوز هم مثل سابق لباس می‌پوشیدم گفته ترینا گویی میرفتم تا در مسابقه کشتی برای خیریه شرکت کنم اصلا نمیدانستم ساکنان گرانتا هاوس درباره من چه فکری می‌کنند. از ویل که نمیشد چیزی فهمید حدیم زدم از نظر نیتن فقط آخرین نفر فهرست بلند بالای پرستاران استخدام شده هستم با اینکه رفتار دوستانه داشت کمی و تفاوتبیاعتنا بود حس می کردم قبول ندارد که به مدت طولانی در آنجا دوام بیاورم. آقای ترینر هم وقتی دم در از کنار هم رد می شدیم معدبانه برایم سرتکان میداد. گاهی هم می پرسید ترافیک چطور است؟ یا آیا عوضا روبه است هست یا نه؟ اما از نظر خانم ترینر، فای خدای من، احمق ترین و بیمسئولیت ترین آدم روی زمین بودم. شروعش با موضوع عکس ها بود در آن خانه هیچ چیز از زیر نگاه خانم ترینر پنهان نمی ماند. من فهمیدم که حادثه شکستن قاب عکس ها چیزی کمتر از زلزله نیست. امتحانی بود که از طریق آن خانم ترینر دقیقا فهمید من ویل را چه مدت تنها میگذارم و به چه سرعتی به هم ریختگی اتاق را برطرف می کنم. هر چند مستقیما نشان نداد. مبادی آداپتر از آن بود که صدایش را بلند کند. اما در جواب من وقتی چیزی می گفتم آهسته پلک می یا هوم کوتاهی می گفت و من هر آنچه چرا باید می دانستم، از طرز برخوردش میفهمیدم. وقتی نیتن به من گفت که خانوم ترینر قاضی دادگاه بخش است، چیزی نمانده بود از تعجب شاخ در بیاورم. خانوم ترینر می گفت حتی وقتی هم ویل خیلی بد اخلاق است نباید مدت طولانی تنهایش بگذارم. متوجه شدی؟ می گفت دفعه بعد که سرگرم گردگیری هستم باید مراقب باشم که وسایل را آنقدر لبه نگذارم که یک وقتی به زمین بیفتد. متوجه شدی ظاهرا ترجیح میداد فکر کند که دفعه قبل و برگها خودشان افتادن زمین. طوری با من رفتار می کرد که احساس می کردم احمق تمامیار هستم در نتیجه در حضورش تبدیل می شدم به آدم احمق تمام ایار درست زمانی سر میرسید که چیزی از دستم افتاده بود زمین یا داشتم با پیچ تنظیم اجاق گاز کلنجار میرفتم. گاهی در راهرو رو و با دلخوری به من که رفته بودم هیزم بیاورم و حالا هم داشتم برمیگشتم نگاه میکرد. انگار بیش از انتظارش طول داده بودم. به طرز غریبی رفتار او بیشتر از گستاخی وی ناراحتم کرد. یکی دو بار وسوسه شدم مستقیما از خودش بپرسم آیا مشکلی وجود دارد؟ میخواستم بگویم شما به من گفتید که بیشتر به خاطر رفتارم استخدامم کردین تا برای مهارتهای هرفهیم. خب من همه این روزایی لعنتی رو با شوق و زوق اینجا بودم. مصمم و قاتل. همونطوری که میخواستید. پس مشکل کجاست؟ اما کامیلا ترینر زنی نبود که بشود این حرفا رو با اوزد. علاوه بر آن، حس میکردم در آن خانه کسی مستقیم چیزی را به دیگری نمیگوید. لیلی، پرستار قبلی، این عادت خوب رو داشت که از اون قابلمه، همزمان برای پخت دو و استفاده کنه. به این معنی بود که تو زیادی ریخت و پاش میکنی. ویل، شاید قهوه میل داشته باشی. یعنی نمیدنم چه به تو بگویم. کارهای دفتری دارم که باید رسیدگی کنم. یعنی تو گستاخی کردی و من باید اتاق را ترک کنم. همه این جملات با حالت تعصف باری بیان می‌شدند. همزمان انگشتان باریکش صلیب گردنبندش را به عقب و جلو حرکت می‌دادند. زنی بود که احساساتش را بروز نمیداد. بسیار خیشتندار و آرام. من معدبانه لبخند می‌زدم و وانمود می‌کردم متوجه چیزی نیستم و به کاری که برایش حقوق دریافت می‌کردم ادامه می‌دادم. یا دستکم تلاشم را می‌کردم. چرا زور تو میزنی یواشکی با چنگال به من هویج بدی؟ به بشخاب نگاه کردم داشتم به گوینده ی زن تلویزیون نگاه میکردم و از خودم می پرسیدم اگر من موهایم را رنگ موهایش کنم چه قیاف پیدا میکنم؟ ها ام... نه نمیکن چرا هویج رو با چنگال له کردی و زیر سس هایم کردی خودم دیدم از خجالت سرخ شدم حق با او بود نشسته بودم و داشتم به او غذا میدادم. همزمان هم داشتیم اخبار نیمروزی نگاه میکردیم. غذای آن روز گوشت گوساله سرخ شده با پوره بود. مادرش گفته بود که همیشه سن و سبزیجات توی بشقاب غذایش بگذارم. در صورتی که خودش آن روز قاطانه گفته بود که سبزیجات نمیخورد. گمان نکنم غذای توی دنیا بوده که برای او مفید باشد و به من دستورش را نداده باشند. چرا به زور میخای هویج بخوردم بدی؟ نه اینطور نیست. پس حویش توی باشخاب نیست؟ به تکه ریز هویج نگاه کردم خب بسیار خب منتظر جوابم بود ابرویش رو هم بالا داده بود خب فکرم سبزیجات براتون خوبه بخشی به دستور خانم ترینر بود و بخشی هم از سر عادت خیلی وقتها به توماس غذا داده بودم سبزیجاتش باید لح می شدند، به شکل خمیر در آمدند، یه زیر کپه سیب زمینی پنهان می شدند. گاهی هم با پاستا به خوردش می دادیم. هر باری که موفق می شدیم سبزیجات را قاطی بقیه غذاها به دهانش ببریم، احساس پیروزی می کردیم. بزر چیزی را برات روشن کنم. فکری با خوردن دو تیکه هویج حال روزم بهتر میشه. این سبکرف زدنش به نظرم احمقا میاد. اما یاد گرفته بودم نشان ندهم که مرعوب حرفها و کارهایش شدم. با آرامش جواب دادم. بله. منظورتون رو بعد یک دفعه ویل زد زیر خنده. چنان به نفس نفس افتاد که انگار خودش هم باورش نمیشد بخندد. سرش را تکان داد. محض خدا. من به او زل زده بودم. <تصفيق> آخه واقعا چرا داشتی یاشگی هویجارو رو خوردم میدادی بدنا آاقات میخواستی بگی که تونل باز کنم تا آقای قطار بتونه کلم بروکسل له شده رو به ایستگاه تحویل بده <تصفيق> لحظه ای به حرفش فکر کردم با قیافه خشک و جدی گفتم؟ نه من فقط به آقای چنگال کار میکنم آقای چنگال شبیه آقای قطار نیست توماس ماه پیش این حرف را به من زده بود. <تصفيق> مادرم به اید یاد داده؟ نه ببخشید من فقط فقط حواسم نبود از تو بعیده بسیار خوب بسیار خوب اگه این هویجای لعنتی واقعا ناراحتتون میکنه جمعشون میکنم این حبیجای لعنتی نیست که ناراحتم میکنه ناراحتم چون مستخدمی که کارد و چنگال و آقا و خانوم خطاب میکنه حبیجه رو قاطی بقیه غذا به خوردم میده شوخی بود حالا بذاید رو بردارم صورتش رو برگردند سیر شدم فقط چایی میخوام وقتی داشتم از اتاق خارج میشدم با صدای بلند گفت تلاشم <تصفيق> نکنون کدوی لعنتی هم قاطیش کنی سرگرم شستن زرف بودم که نیتن از راه رسید لیوان دستدار را دستش دادم. گفت امروز سر حاله واقعا؟ سندویچ را توی آشپزخانه خوردم هوای بیرون به شدت سرد بود جو به خانه حالا دیگر مثل سابق غیر دوستانه نبود <تصفيق> گفت که داشتی مصمونش میکردی اما شوخی میکرد میفهمی که از این حرف به طرز قریب خوشنود شدم. اما تلاش کردم نیتن متوجه آن نشود. آره. فقط به من زمان بده. حالا بیشتر حرف میزنه. قبلا هفته ها میگذاشته یک هم حرف نمیزد. اما چند روز گذاشته میبینم چهار تو کلمه حرف میزنه. یادم آمد که فیل به من گفته بود اگر دست از براجی بر رجیبه ندارم مجبور میشود با صندلی چرخدارش زیرم کند. به گفتم بگم تعریف من تو از حرف زدن کمی با هم فرق میکنه ما با هم در مورد کریکت حرف زدیم باید بگم که صدایش رو پایین آورد خانم ترینری که دو هفته قبل از من پرسید که خوب کار میکنی یا نه منم گفتم کارتو خوب بلدی اما میدونستم که منصورشی نیست بعد روز پیشم اومد و گفت که صدای خندتون رو شنیده به روز قبل فکر کردم داشت به من میخندید به نظر ویل خنده دار آمده بود که من نمیدانستم پستو چیست به او گفته بودم که شام پاستا با سس و سبز داریم دلیل خنده برای خانم ترینر مهم نیست متطاب بود که هیچ چیز نتونسته بود اونو به خنده بندازه واقعیت داشت ظاهراً من و ویل راه آسانتری برای سر کردن با هم پیدا کرده بودیم او با من به تندی رفتار میکرد و من هم گاهی این خودش با او برخورد می کردم. وقتی به من می گفت که کاری را درست انجام ندادم، من جواب می دادم که اگر واقعا برایش مهم است، باید با زبان خوش از من درخواست کند. ولی ویل برعکس عمل می کرد، و به من بد و بیراه می گفت یا سرخر خطابم می کرد. من هم جواب می دادم که این سرخر را از سرش واک تا ببیند به چه میزان در زندگیش تاثیر دارد. این برخوردها تا حدودی پیش ناخواسته حد ولی ظاهرا برای هر دو نفرمان خوب بود حتی به نظر میرسید که مایه آرامشش است وقتی می بیند یک نفر هست که آماده هم جوابی با اوست با او مخالفت می کند یا به او میگوید که آدم وحشت به این نتیجه رسیده بودم که از وقتی تصادف کرده همه پاورچین پاورچین در اطرافش راه رفتهاند و دست به عصا البته شاید بغیر از نیتن که به نظر میرسید ویل ناخداگاه با او رفتار محترمانه دارد نیتن احتمالاً در مقابل اظهار نظرهای تند او از خود بی نشان داده بود در اصل نیتن ضد ضربه شده بود. فراد حواست باشه بیشتر از این وسیله خندش نشی لیوان را درون لگن گذاشتم. فکر نکنم ئله باشه به غیر از جف داخلی خانه یک تغییر بزرگ دیگر هم پیش آمده بود حالا ویل مثل سابق از من نمیخواست که تنهایش بگذرم حتی یکی دو بار به من گفت که اگر مایل هستم در اتاق بمانم و با او فیلم ببینم اگر فیلم ترمیناتور بود با اینکه تمام فیلم هایش را دیده بودم حاضر بودم دوباره ببینم اما وقتی یک فیلم فرانسوی با زیرنویس نشانم داد نگاه اجمالی به جلش کردم و گفتم فکر کنم تمایلی به دیدنش نداشته باشم چرا؟ شانه بالا انداختم فیلم با زیرنویس دوست ندارم مثل اینه که بگی فیلم با هنر پیش دوست نداری بس خره نباش چیو دوست نداری؟ اینکه به همون اندازه که باید تماشا کنی باید بخونی؟ فیلمه خارجی دوست ندارم غیر از فیلم قهرمان محلی همه فیلم خارجیان چی خیار کردی؟ لابات فکر میکنی هالیوود تو همه برمینگمه؟ <laughs> <laughs> خنده داره. وقتی اعتراف کردم که هیچ وقت فیلم با زیونویست دوست نداشتم، نمی توانست طرفم را باور کند. فرصتی برای دیدن فیلم نداشتم. والدینم شبها ریمات کنترل را متعلق به خود می دانستند. دیدن فیلم خارجی برای پاتریک مثل این بود که به او پیشنهاد شرکت در کلاسهای شبانه قلاب بافی سینمای چند سالانه در نزدیکترین شهر ما فقط آخرین فیلمهای به آنها شلی کن یا کمدیهای های عشقی نمایش میداد نوجوانانی که هو می هومی کشیدند و کاپشن کلاهدار میپوشیدند چنان برای دیدن این فیلمها یورش می بردند که اغلب بزرگترها به ندرت خود را به دردسر رفتن میانداختند لو باید این فیلمو ببینی در واقع امر میکنم که ببینی ویل صندلی چرخدار را برگرداند و به مبل راحتی اشاره کرد بشین اونجا تا وقتی تموم نشده بلند نشو هیچ وقت فیلم خارجی نمی بینه یک فیلم قدیمی بود درباره گوشپشتی که خانه ای را در نواحی روستایی فرانسه ایرز برد. ویل گفت که بر اساس کتاب معروفی ساخته شده اما من چیزی از آن نشنیده بودم 20 دقیقه اول را با ناراحتی سپری کردم. زیرنویس ها عصبی هم می کردند. اگر بگویم باید بروم دستشیر ویل عصبانی می شود یا نه؟ بعد اتفاقی افتاد. از خاطرم رفت که چقدر سخت است آدم بخواهد هم زمان هم بشنود و هم بخواند. یادم رفت داروی ویل را بدهم. توجهی هم نداشتم که شاید خانم ترینر فکر کند دارم تنبلی می کنم. کم کم نگران پیرمرد فقیر و خانواده شده بودم که همسایه های نابکار فریبش می دادند. وقتی مرد گوش پشت مرد، بی گریه کردم. آب بینیم را به آستین لباسم پاک می کردم. ویل کنارم ظاهر شد. خوب. زیر زیرچشمی نگاهی به من انداخت. اصلا خوشت نیومد. سرم را بالا گرفتم و در اوج تعجب دیدم که هوای بیرون تاریک شده است دستم را به طرف جعبه دستمال کاغذی دراز کردم لابد حال دلت خونک شده آره؟ کمی فقط متعجبم که تو به سن راستی چند سالته؟ بیست و شیش رسیده باشی و هرگز فیلم با زی نویس ندیده باشی نگاهم می کرد. همینطور که داشتم چشمانم رو خشک می کردم. به دستمال کاغذی نگاه کردم و دیدم تمام ریمیل از چشمانم پاک شده است. با قرولونت گفتم. اصلا متوجه نبودم که زوری نشستم و دیدم. خب لویزا کلارک، پس با خودت چه می کنی اگه فیلم تماشا نمی کنی؟ دستمال را در مشتم گلوله کردم. دوسته بدونی وقتی اینجا نیستم؟ چیکار کار میکنم؟ این تو بودی که میخواستی ما هم دیگه رو بشنسیم پس بیا از خودت برام بگو این روش حرف زدنش بود اما آدم نمیتوانست کاملا مطمئن شود که قصد مسخره کردن نداشته باشد من منتظر باج از طرف او بودم برای همین گفتم چطور؟ شد که یه بار میخوای بدونی؟ امان از دست تو معاشرتات که اصرار دولتی نیست هست؟ در خور به نظر می رسید گفتم نمیدونم گاهی میرم با رو لبیتر میکنه تلویزیون تماشا میکنه. میدم و دوست پسرم رو تماشا میکنم که دوم دو میکنه. همین کار به خصوصی نمیکن دوست تو تماشا میکنی که ورزش میکنه؟ آره اما خودت که نمیکنی؟ <تصفح> نه اصلا سرم رو پایین گرفتم و به خودم اشاره کردم تنم اومی حرفم لبخند بر لبانش نشاند. <تصفح> خب دیگه چه کارایی میکنی؟ منظورت چیه؟ چه سرگرمی هایی داری؟ کجاها میری؟ سفر؟ مثل معلم های مدرسه شروع کرد به پرسیدن کردم به خاطر بیاورم م... سرگرمی به خصوصی ندارم م... گاهی کتاب میخونه آشق لباس هستم چه خوب؟ م... من خیلی اهل سرگرمی و تفریح نیستم آهنگ صدایم به طرز غریبی تدفعی شده بود. برنامه خاصی ندارم. متوجهی؟ کار میکنم و بعدم میرم خونه. کجا زندگی میکنی؟ اون طرف قلعه. خیابون رنفرو. بحت زده به نظر میرسید. البته واقعا هم جای تعجب داشت. آدم های این طرف قلعه با آن طرف قلعه چندان مراوده ای نداشتند. خونمون نزدیک بزرگ راهه کنر مکدونالد. سری تکان داد، گرچه مطمئن نبودم دقیقا متوجه شده باشد کجا را میگویم تعطیلات چی کار میکنی؟ با دوستم پاتیک رفته بودم اسپانیا اضافه کردم توی بچگیم فقط به درست تو تنبی رفتم امام توی تنبی زندگی میکنه چی میخوای؟ یعنی چی؟ از زندگیت چی میخوای؟ زدم چه سوال سختی؟ چه میتونه؟ در کل پرسیدم نمیخوام که خودتو روانکاوی کنی فقط پرسیدم که چه برنامه برای زندگیت داری؟ قصه ازدواج داری؟ بچه دارشی؟ رویاه هایی داری؟ سفر دور دنیا بری؟ مکس طولانی کرد فکر میکنم حتی پیش از اینکه حرفم را بزنم میدانستم که جوابم او را نومید میکند نمیدونم هیچ وقت جدی به این چیزا فکر نکردم روز جمعه رفتیم بیمارستان خوشحالم که روز صبح از قبل خبر نداشتم که ویل وقت بیمارستان دارد چون تمام شب را توی رختخواب بیدار می و نگران بردنش بودم بله درست که رانندگی می کردم، اما به همان اندازه که میتوانم بگویم فرانسه حرف میزنم قبول که امتحان داده و گوای نامه گرفته بودم اما بیشتر از سالی یک بار پشت رول نمینشستم از فکر اینکه ویل و صندلی چرخدارش را سوار می که برای این کار مناسب بود کنم و سلامت به شهر مجاور ببرم و برگردانم، وحشت به جانم افتاده بود. تا هفته ها می کردم کاش کار روزانم در آن خانه به شکلی بود که گاهی می از خانه بزنم بیرون. اما برعکس، فقط باید توی خانه می مندم. قبلن کارت بیمارستان را لایی پوشه مربوط به وضع جسمانیش گذاشته بودم پوش قطوری که بخشپندی شده بود به هم بیمه توان و وقت دکتر کارت را از لای پوش قبیدم و نگاه کردم خدا خدا میکردم ویل اشتباه کرده باشد. اما درست بود ویل همان روز وقت دکتر داشت. مادرت هم میاد؟ نه با من دکتر نمیاد. نتوانستم تعجبم را نشان دهم فکر کرده بودم مایل است بر درمان پسرش نظارت کامل داشته باشد. ویل گفت: قبل نمی اومد اما حالا با هم قرار گذاشتیم نیات. نیتن میاد. مقابلش سانو زده بودم و قضا می دادم. چنان عصبی بودم که قضا روی پاهایش ریخت. حالا هم بیهوده تلاش میکردم تمیزش کنم. در نتیجه شلوارش حسابی خیس شده بود. ویل چیزی نگفت فقط گفت که اینقدر اسخایی نکنم. اما چیزی از دلشور هم کم نکرد. چرا بیاد؟ همینطوری. دلم نمیخواست بداند که چقدر نگران هستم. تمام صبح را صرف کردم و دفترچه راهنمای تخته مخصوص سوار کردن صندلی چرخدار را خواندم و دوباره خواندم. در صورتی که این زمان را باید صرف نظافت می‌کردم. با این همه نگران لحظه‌ای بودم که به تنهایی باید 70 سانتیمتر از سطح زمین بلندش می‌کردم. کلارک به بجون مشکلی هست؟ باشه، فقط فقط فکر کردم شاید بهتر باشه دفعه اول کسی همراه اون باشه که چم و خمه کارو میدونه گفت برای مخالفت با من نه، اینطور نیست پس چون نباید چیزهایی رو در مورد سلامتیم بدونم؟ رک و پوسکنده گفتم تو کار با سطح شیبدار رو بلدی دقیقا میتونی به من بگی چی کار باید بکنم؟ آره؟ به من چشم دوخت. نگاهش سرد و احساس بود. اگر دنبال دعوا گشت ظاهرا تغییر عقیده داد. چون گفت... آه که اینطور. آره نیتن میاد. کمک خوبیه. فکر کنم اگه اینجا باشه کمتر عصبی میشی. من عصبی نیستم معلومه نگاهی به شلوارش کرد من همچنان با تکه پارچه سرگرم تمیز کردنش بودم سس پاستا را از شلوارش پاک کرده بودم اما شلوار خیس خیس شده بود لا با دیگه کنترل ادرار ندارم آره هنوز کارم تموم نشد سه را به برق زدم و حرارتش را روی شلوارش گرفتم. وقتی هوای گرم وارد شلوارش شد، ابروهایش را بالا داد. من گفتم بله، گرچه فکر نمی بعد از ظهر جمعه و اینطوری بکسر تو واقعا عصبی هست یاره؟ کاملا پیدا بود که دارد برندازم می کند. آکه واکن. این منم که هوای داغ سه شعار مستقیم به پا میخوره. جواب ندادم از سر و صدای سه صدایش به سختی به گوشم میرسید ویل بابا برای من که کارم به صندلی چرختار کشیده شده چیز بدتری هم وجود داره حرفش احمقانه بود اما نتوانستم جلوی خنده را بگیرم تو دارترین آدم دنیا میخواست من را سرحال بیاورد اتومبیل را دیدم که هیچ فرقی با بقیه نداشت اما وقتی در عقب باز شد تخته از بغل اتومبیل پایین آمد و هم سطح زمین شد من صندلی چرخدار مخصوص بیرون از خانه را مستقیم به طرف سطح شیبدار بردم نیتن ایستاده بود و نگاه می کرد ویل صندلی چرخدار جداگانه ای برای وقتهایی که بیرون میرفت داشت نگاهی به ترمز و برقی انداختم و آن را طوری تنظیم کردم که او را آهسته بالا ببرد و داخل اتومبیل بگذارد نیتن سوار ماشین شد کمربند سندلی ویل را بست و چرخها را قفل کرد پشت فرمان نشستم تلاش میکردم مانع لرزیدن دستهایم شوم ترمز دستی را پایین دادم و اتومبیل را آهسته به حرکت درآوردم و راهی بیمارستان شدم ویل حالا که از خانه دور بود، کمی خودش را جمع و جور کرده بود. هوا سرد بود. من و نیتن پالتوی زخیم و شال را محکم دور ویل پیچیده بودیم. ویل ساکتتر از همیشه بود. سکوت اختیار کرده و تا حدودی تحت شعاع دنیای بزرگ اطرافش قرار گرفته بود. هر باری که از آینه عقب نگاهش میکردم میدیدم که به بیرون پنجره زل زده است. نمیشد چیزی از قیافش فهمید. مرتب از آینه عقب نگاهش کردم. با اینکه نیتن آنجا بود باز هم نگران بودم مبادا ترمز صندلی چرخدار از مهارش در برود اما حتی وقتی هم پایم را رو محکم روی ترمز گذاشتم یا خاموش کردم که چندین بار هم پیش آمد فقط تکانی خورد و منتظر ماندم تا خودم را جمع جور کنم سرانجام وقتی به بیمارستان رسیدیم من از تقلای زیاد خیس عرق بودم سه بار پارکینگ بیمارستان را دور زدم. چنان وحشت زده بودم که فقط میخواستم جای پارک بزرگی پیدا کنم تا بتوانم دنده عقب بروم. احساس میکردم حوصله هر دو نفرشان دارد سر می‌دود. سرانجام جایی پیدا کردم و ایستادم. سطح شیبدار را پایین دادم و نیتن کمک کرد صندلی چرخدار ویل روی زمین قرار بگیرد. نیتن وقتی پیاده میشد دستی به پشتم کشید و گفت: آفرین، خوب رانندگی کردی. ولی من شک داشتم که اینطور بوده باشد. تا وقتی آدم خودش با فردی که روی صندلی چرخدار نشسته است همراهی نکند هرگز متوجه خیلی چیزها نمی شود. یکی اینکه پیاده روها چقدر پر از آشغال هستند پر از چاله چوله های بد گاهی هم فقط ناهموارند. آهسته کنار ویل که صندلی چرخدار را میراند راه میرفتم و متوجه بودم که چاله چوله ها او را به طرز بدی تکان میدهند و بالا و پایین میبرند. میدیدم که چطور مجبور است در مقابل بعضی موانع با احتیاط تمام صندلی چرخدارش را راه ببرد. نیتن خودش را به ندیدن میزد اما من میدیدم که هواسش هست. ویل، ابوس جدی به نظر می رسید. نکته دیگر این که رانندگان بسیار بی توجه هستند. اتومبیل را کنار خیابان کج پارک می‌کنند یا چنان جفت هم که راهی برای عبور صندلی چرخدار باقی نمیماند من به شدت شکه شده بودم. یکی دو بار هم وسوسه شدم یادداشت توندی بنویسم به, به برفاکن ها بزنم. اما ظاهراً این چیزها برای ویل و نیتن عادی بود. بالاخره نیتن راه عبوری پیدا کرد و همینطور که من و خودش در دو طرف ویل بودیم موفق شدیم از خیابان را طی کنیم. از وقتی خانه را ترک کرده بودیم ویلی کلمه هم حرف نزده بود. ساختمان بیمارستان دو سه طبقه بود و از نور خورشید می درخشید. بخش شیک پذیرش بیشتر شبیه هتل های لوکس بود. شاید با بیماهای خصوصی قرار داد داشت. من عقب ایستادم و ویل جلو رفت و اسمش را به متصدی پذیرش گفت. بعد دنبال او و نیتن رفتم. وارد راهرو تویلی شدیم. نیتن کل پشتی بزرگی همراه داشت که تمام وسایل مورد نیاز ویل داخلش بود. از لیوان گرفته تا لباسهای اضافی. نیتن صبح آن روز وسایل را در حضور من درون کیف گذاشته و حوادث احتمالی را مفصل توضیح داده بود. بعد وقت قیافه ی وحشت را دید گفت چه خوب که همیشگی نیست و گاهی مجبوریم از این کارا بکنیم. من با ویل به اتاق دکتر نرفتم. کنار نیتن روی صندلی راحت بیرون اتاق نشستم. فضای آنجا بوی بیمارستان نمیداد. روی لبه های پنجره گلدانهایی پر از گل تازه گذاشته بودند که حتی یک شاخهش هم پژمرده نبود. بیشترشان گل های غیر بومی بودند که من اسمشان را نمیدانستم. گلارایی بسیار زیبایی هم داشتند. بعد از نیم ساعت که همین طور نشستیم گفتم: اینجا با اون چیکار می نیتن سرش را از روی کتاب بلند کرد هر شش ماه بار باید مایانه بشه مم. که ببینن بهتر شده نیتن کتابش را کنار گذاشت. بهتر نمیشه نوخا از دیده مم. اما تو که فیزیوتراپی و اینجور کارا میکنی فقط تلاش میکنیم وضعیت جسم را همینطور نگه داریم از تحلیل رفتگی و از رفتن عمله ها و شلی پا و اینجور چیزا جلوگیری کنیم وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد لحن کلامش آرام بود انگار با خودش فکر کرد که باید ناامیدم کند آه. لو ویل هیچ وقت نمیتونه راه بره فقط توی فیلمهای هالیوود بود شاید پیش بیاد ما فقط تلاش میکنیم که درد و رنجشو کم کنیم و همینقدر حرکتی که داره حفظ بشه فیزیوتراپی رو به خاطر تو قبول کرده؟ چون هر کاری که من پیشنهاد میدم قبول نمیکنه. نیتن به بینیش چین انداخت؟ انجام میده، ولی فکر نکنم خیلی دل به کار بده اول که اومده بودم و بود ولی بعد که دید بهتر نشد بگمونم بیخیال شد گرچه ول نکرد به نظر خودت باید ادامه بده؟ نیتن به زمین چشم دوخت راستشو بگم فلج چهارندام از مهره 5 6 دستش را روی بخش فوقانی قفسه سینه گذاشت و گفت یعنی از اینجا به پایین دیگه حرکت نداره هنوز راه درموشو پیدا نکردم به در چشم دوختم چهره ویل وقتی زیر نور خورشید زمستانی سوار ماشین بودیم جلوی چشمانم ظاهر شد این مرد خاموش همان مرد خندانی بود که تعطیلات به اسکی می رفت علم پزشکی داین دا در حال پیشرفته. برای چیزی مثل این حتما تلاش خودشونو می کنن. نیتن با لحن مالایه می گفت اینجا بیمارستان خیلی خوبیه جایی که هنوز به زندگی امیدوارن نه نیتن به من نگاه کرد بعد کتابش را باز کرد گفت به پیشنهاد نیتن حدود ساعت یک رو رفتم که قهوه بگیرم می گفت که کار ویل معمولاً طول کشد. گفته بود تا برگشتنم مراقب اوضاع است. چرخی در بخش پذیرش زدم. مجله های روزنامه فروشی را ورق زدم و در پیشخان شکلات فروشی وقت گوشی کردم. شاید همانطور که انتظار میرفت، وقتی میخواستم به راه رو برگردم راه هم را گم کردم و مجبور شدم از چند پرستار بپرسم از کدام طرف باید بروم. دو نفرشان نمیدانستند. وقتی رسیدم قهوه سرد شده بود. و روح روح خالی بود. وقتی جلوتر رفتم، دیدم در اتاق پزشک نیمه باز است. بیرون اتاق لحظاتی مردد ایستادم. دادم. حالا صدای خانوم ترینر در گوشم زنگ می زد. داشت سرزنشم میکرد کرد که چرا فیل را تنها گذاشتم. دوباره این کار را کرده بودم. صدای به گوشم خورد که می گفت، پس آقای ترینر سه ماه دیگر می بینم اتا. مقدار داروهای آنتی اسپاسم را مشخص کردم. حتما برای نتیجه آزمایش ها با شما تماس میگیرند. به احتمال قوی دوشنبه. صدای ویل را شنیدم که می گفت می توانم اینها را از داروخانه ی طبقه پایین تهیه کنم؟ دکتر گفت بله، حتی شاید بتوانند بیشتر هم بدهند. صدای ای به گوش رسید که می گفت پوشه را بردارم حد زدم کارشان تمام شده است. آهسته به در زدم. صدایی گفت که داخل شوم. دو جفت چشم به طرف من برگشت. پزشک از صندلی بلند شد و گفت ببخشید فکر کردم فیزیوتراپیست هستید. همینطور که دستم به دست در بود گفتم من پرستار آقای ویل هستم. ویل درون صندلی چرخدارش به جلو خم شد و نیتن بلوزش را پایین کشید. گفتم ببخشید، فکر کردم لباستان را پوشیدید. صدای ویل در اتاق پیچید که گفت لو، یک دقیقه صبر کن، الان میاییم. زیر لب آسخایی کردم و از اتاق بیرون رفتم. صورتم داغ شده بود. بدن برهنه ویل نبود که کم کرد یا بدن لاغر و پر از جای زخمش. قیافه ناراحت به کم نبود. همان قیافهی که هر روز در خانم ترینر می دیدم. وقتی خانوم ترینر این قیافه را به خودش میگرفت میفهمیدم که به رغم دستمزد بالایی که می همچنان همان احمق بی دست و پا هستم. بلکه خطوط قرمز کبودی که مچ دست ویل را خط بود شکم کرده بود. جای زخم بود. به شکل خطوط دراز و دندانه دار که قابل ترمیم هم نبودند. با اینکه نیتن سری آستین بلوز ویل را پایین کشید من دیدم.